خدا بیا مرزا جایش و جایی رو ایشون با مرحوم سید کریم که خدمت مام زمان زیاد رسیده بودن رفیق بود و خودش میگفت من یکی از خصوصیاتی که در مرحوم آسید کریم پین دوز دیده بودم و مطمئن بودم به این جهت ایشون انقدر کرارن خدمت ما عصد علیه السلام میرسه که تا حدی که یه روز میگن مرحوم آج مقدس تو مسجد بازدازا بالا منبر بود یه دفعه از منبر پرید پایین و یه بوی کشید دوید. بعضی اهل فن دنبالش اونایی که خیلی توجه نداشتن چون اونایی که این تیپیان گاهی کارهای عجیب و غریبم میکنن گفت مثلا که رگ خلی آقا گل کرده حالا مثلا سر خولی به خلخلی میزنه. یه دفعه وسط منبر دوید اومد و فرار کرد جلسه رفت و مثلا ولی اونایی که اهل فن بودن میدونستن دنبالش رفتند. دید پین پی سید کریم گفت تو خدا چه خبر بود؟ آقا اینجا بود الان تش گفت تو بازار رو گرفته بود من یه دفعه بالای منبر دیدم بازار حواش عوض شد فضاش عوض شد فهمیدم باید الان پیش شما باشی بهز دویدم منبر بر ویل کردم بیا ببینم میتونم یه گوشه ای هم مثلا من مشاهده کنم یادم مرو جای جایی شو جایی می میگم من با سید کریم رفیق بودم از نزدیک باش، اونس داشتم واقعا اینو مبا میگفت چون دیگه مرحوم سید کریم کسی نکو که بخواد تو اینجام بگه میگفت به من میگفت های است حسین. اگر یک هفته حضرت رو نبینم میمیرم و چون خدا روزی رو تضمین کرده این روزیشه یعنی این جور ارتباط داره حالا اینهایی که به این منازل بالا میخوان برسه میگه من نبینم میمیرم من وقتی که نبینم نمیمیرم که هیچی اصلا ممکنه ده روز بیست روز بگذره اصلا یادم نیاد خب بین من و آسید کرد نسبت به امام زمان باید مثل عکس العمل یه جور باشه